قفه 615 من از آن نحسه که چشمانم به سیمای زیبایی چون کرشیدت روشنگردید دل خود را به تو دادم تا هم می با پس دادن انگشتری که من در انگشت تو کردم مرا خوشبخترین افراد عالم سازی و در صورتی که انگوشتر را نفرستی آن را به منزل یه حکم نابودی خود تصور خواهم کرد زیرا من حاضرم به خاطر عشق تو جانم را در راه تو فدا کنم من در اتاق انتظار. در انتظار پاسخ تو هستم همین که قمر و زمان نامه را به پایان آورد انگشتری را به طور پنهانی در لابلای آن گذاشت و سر آن را بست و به دست رئیس نگهبانان داد تا آن را به دست شاهزاده بدو را برساند و به او گفت به آن که شاهزاده این نامه را بخواند و آن چیزی را هم که در داخل نامه است ببیند فوراً بیماری او درمان می شود. پلیس نگهبانان نامه را به شاهزاده بدورا تصمیم کرد و گفت این جوان جسورترین ستاره شناسی است که تا کنون به این قصر آمده است و به من میگوید شاهزاده خانم با خواندن این نامه و دیدن آن که در داخل نامه گذاشته است خواهد یافت تصور می‌کنم آدم بسیار احمقی باشد شاهزاده بدورا با بیتفاوتی نامه را گرفت و آن را باز کرد همین که در میان نامه انگشتر را دید دیگر نامه را نخواند و از شدت هیجان و خوشحالی زنجیر پای خود را گسیخت و سراثینی از اتاق بیرون آمد وقتی قمر و زمان را دید او را فورا شناخت و قمر و زمان هم شاهزاده خانم را شناخت هر دو یکدیگر را محکم در آغوش گرفتند و از خوشحالی زبانشان بند آمده بود لحظاتی چند چشم در چشم یکدیگر دوختند دایه که به دنبال شاهزاده را از اتاق بیرون آمده بود مبهود شده بود و هر دوی آنها را به درون تالار برد در آنجا شاهزاده انگشتر دست خود را در آورد و تقدیم قمر و زمان کرد و گفت هیچ انگشتی شایسته سفر از انگشت تو برای این حلقه نیست من این را برای تو نگه داشته بودم و این دو انگشتر را که نماینده عشق ماست هرگز از انگشتانمان جدا نخواهیم کرد رئیس نگهبانان جریان را با خوشحالی تمام آگاهی سلطان رساند و گفت این جوان بدون تردید شاهزاده خانم را معالجه کرد و هیچ خودم از حق بازی های شیادان قبلی را هم اجرا نکرد. سلطان خود را به شانساد بدورا رسانید و او را در آغوش گرفت و نوازش کرد و دست قمر و زمان را در دست گرفت و دست شانساد بدورا را هم روی دست او گذاشت و گفت من به عهد خود پایبندم و دخترم را به همسری تو که شفا دهنده او هستی در می به من می تو کیستی؟ ظاهر تو و طرز بیان و رفتارت نشان می دهد بزرگزادگانی. قمر و زمان برای سلطان توضیح داد که او شاهزاده ای است که خود را به شکل ستاره شناسان درآورده تا از نزدیک شاهزاده بدورا را ببیند و انگشتری را که متعلق به شاهزاده است به او تسلیم کند و به این وسیله بگوید که جوان مورد علاقه شاهزاده خانم بدورا خود اوست و بانوی زیبای مورد علاقه او هم همان شاهزاده خانم است و توضیح داد که او شاهزاده قمر و زمان فرزند پادشاه و ملکهی کشور بسیار پهناور. و پر جمعیت و آبادی است که آن را جزایر فرزندان خالدان مینامند وقتی سلطان سخنان قمر و زمان را شنید گفت سرگذشت شنیدن یا شگفتانگیزی است که نفتهای آینده باید از آن آگاه باشند و باید آن را به رشته ی نگارش درآورد آنگاه دستور داد تا آن را به صورت کتاب درآورند و نسخه اصلی را در خزانه سلطنتی و نسخه های دیگر را در سراسر قلمراه امپراتوری چین و سایر کشورهای همسایه منتشر سازند در همان روز مراسم عقل بین دو شاهزاده صورت گرفت و جشن و سرور همگانی در سراسر سر خاک امپراتوری چین برقرار گردید سلطان مقام بلندی به مرزبان واگذار کرد شاهزاده قمر و زمان و شاهزاده بدورا شدی بودند و خود را خوشبختترین افرادی روی زمین احساس میکردند سلطان هم که بسیار شاد شده بود چندین ماه متوالد جشت های را در سر و کشور پهناور چین ادامه داد در میان این شادمانیها ها شبیه از شبها قمر و زمان پدر را در خواب دید که در بستر مرگ در واپسیندم زندگی است و به اطرافیان خود می گوید پسر من که آن همه به او دلبسته بودم و با آن همه مهبانی و دلسوزی و توجه او را پرورش دادم مرا تنها گذاشت و رفت و سبب مرگ من شد سر و از خواب پرید آههای می میکشید و شاهزاده بدورا هم از خواب بیدار شد و پرسید چه شده است و زمان گفت پدر عزیزم را فراموش کردم آه خدای بزرگ او را سلامت نگهدار شاید در این لحظه که از او صحبت میکنیم از دنیا رفته باشد و زمان دوباره گرفتار ناراحتی و قصه گردید شاهزاده بدورا که وزن را چنین دید نزد پدر رفت و سلطان تقاضا کرد موافقت کنند تا او همراه شوهرش به دیدار شاه زمان پدر شوهرش برود. سلطان گفت: گرچه دوری است و برایم بسیار دشوار و طاقت فرساست، ولی موافقم که همراه قمر و زمان به دیدن پدر شوهرت بروی، اما به این شرک مدت اقامت تو در آنجا از یک سال تجاوز نکند. شاهزاده بدورا هم شرط را پذیرفت و نزد قمر و زمان رفت و این موژه را به او داد. قمر و زمان هم خوشحال شد. سلطان دستور داد وسایل سفر را آماده کردند. و همراهان و همسفرها را هم انتخاب کردند و روز حرکت فرارسید خود سلطان چندین فرسنگ آنها را مشایعت کرد و در آخرین مرحله دخترش را در آغوش گرفت و خداحافظی کرد و به قمر زمان گفت مراقب همسر تازه عروس خود باش و امیدوار است که سلطان شاه زمان هم عروس تازه را بپکندد و همانگونه که او دخترش را دوست دارد او هم دختر او را دوست داشته باشد سپس اظهار و امیدواری کرد که روزی هم هر دو پادشاه همراه همسران و فرزندان خود به دیدار یکدیگر نایل شوند در آخرین لحظه همدیگر را در آغوش گرفتند و خداحافظی کردند و سلطان هم در طول راه با شکار کردن خود را سرگرم کرد دو شاهزاده و همراهان یک ماه پیاپی به سفر خود ادامه دادند تا آنکه به محل پردرختی رسیدند و خدمتکاران چادرهاران برافراشتند و شاهزاده را در یکی از چادرها به استراحت پرداخت. بعد از مدتی عمر زمان به چادر شاهزاده که در حال خواب بود وارد شد و آرام در کنار او نشست و میخواست چرتی بزند ولی متوجه کیسه‌ای شد که به کمربند شاهزاده آویزان بود. آن را برداشت و دید که انباشته از یاقوت و الماس است. او هم دانه, دانه آنها را شماره کرد. در این هنگام کیسه کوچکی که آن را محکم با روبانی بسته بودند و در آن چیزی را پنهان کرده بودند نظر او را به سوی خود جلب کرد قمر و زمان روبان را باز کرد و در داخل کیسه کوچک یک عدد عقیق جگری رنگ پیدا کرد که در روی آن اعداد و حروف نامفهومی حک شده بود قمر و زمان با خود گفت این عقیق چیز خارق العاده ای است به نظر میرسد شاهزاده خانم برای ایمنی و سلامتی خود آن را همیشه به همراه دارد قمر و زمان عقیز را از چادر بیرون برد تا در زیر نور آفتاب آن را بهتر تماشا کند. اما درست در همین لحظه پرنده ای از آسمان به زمین آمد و ناگهان آن را از میان انگشتان قمر و زمان را بود و به آسمان پرگشید. ناراحتی قمر و زمان از این پیش آمد به قدر بود که نمی‌توان وصف کرد. به خود ناسزا میگفت که او سبب گردید تا این تلسم گرانبها که برای ازش داشت ارزش و و یادگاری مادرش بوده از دست برود قمر و زمان خود را به پرنده که در چند قدمی روی زمین نشسته بود نزدیک کرد اما پرنده دوباره به نقطه دیگری رفت قمر و زمان هم به دنبال او میرفت یعنی از تپهای به درهای و برعکس تا آنکه شب شد و غمر و زمان راه برگشت را گم کرد و ناچارا در زیر همان درختی که پرنده در بالای آن نشسته بود خوابید صبح زود از خواب برخاشت و پرنده همان گونه بالای درخت بود پرنده دوباره مانند روز گذشته به پرواز و نشستن ادامه داد تا روز به پایان رسید و قمر و زمان هم بدون آنکه بداند به کجا کشان نمی شود در دنبال پرنده سرگردان بود ولی متوجه شد که پرنده عقیق را بلعید مدت ده روز دنبال کردن پرنده ادامه داشت تا آنکه روز یازدهم پرنده پشت دروازه شهر رسید و از آنجا به سر دیوار یکی از خانه ها نشست قمر و زمان از فرت خستگی و نومیدی پرنده را رها کرد و وارد شهر شد که کنار دریا واقع شده بود در امتداد رودخانه به حرکت خود ادامه داد تا مقابل در باغی رسید که گشوده بود و دید باغوان ای مشغول کار است باغوان که قمر و زمان را دید متوجه شد تازه وارد است او را به درون باغ برد و در را بست باغوان به قمر و زمان گفت از طرز لباس تو فهمیدم مسلمانی مردم این شهر بتفرز هستند و مسلمانان را قربانی می‌کنند. اقبال تا تو یاری کرده ای که سالم تا اینجا آمده ای قمر و زمان از پناه دادن او تشکر کرد باغبان هم او را به اتاقی برد و برایش غذا آورد قمر و زمان هم آنچه اتفاق افتاده بود برای باغبان بیان کرد و از او طریقه رفتن به کشور پدر خود را جویا شد زیرا پس از یازده روز جستجو از پیدا کردن شاهزاده بدو را شده بود ماه توضیح داد از راه خشکی خطرهای بسیار وجود دارد و بدپرستان مسلمان ها را میکشند. علاوه بر آن درازای راه و دشواری های موجود و عبور از کشورهای در طول راه و نبودن وسایل آسایش سبب میشود شود که از راه دریا سراغ پدر است بروی. نزدیکترین راه آبی گذشتان از جزیره آبنوس است که از آنجا میتوان به جزایر فرزندان خالدان رفت. سالی یک سال یک کشتی به آنجا رفته آمد میکند. اتفاقاً چند روز پیش کشتی از این بندر آزم جزایر فرزندان خالدان شد و باید تا سال آینده در اینجا بمانی و من هم با کمال خوشنودی از تو پذیرایی خواهم کرد. عمر و زمان هم خوشحال شد که چنین محل امنی دارد و روزها در باغ کار می‌کرد و شبها را در فکر شاهزاده بدورا بود و گریه می‌کرد و ناتار بود این حالت را تا یک سال تحمل کند. حال قمر و زمان را به حال خود می‌گذاریم و به سراغ شاهزاده خانوم بدورا می شاهزاده بدورا وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد قمر و زمان در چادر نیست و از ندیمه هایش سراغ او را گرفت و آنها اظهار بی اطلاعی کردند آنگاه دریافت که کیسه ای را که در کمر بندش بوده دست خورده است چون آن را کابش کرد فهمید تلسم او را رو بوده تدیدی نداشت که قمر و زمان روی کنچگاوی آن را است. اما با بی در انتظار بازگشت قمر و زمان بود وقتی تا شب به چادر نیامد شاستاد خانم هزاران فکر به خاطرش گذشت بسیار نگران بود و ناپدید شدن شوهرش را مربوط به تلسم مادرش میدانست که همراه او کرده بود به مادر خود و تلسم او نافضاها گفت زیرا سراوه جدایی قمر و زمان از او شده بود بعد از اندک زمانی آرامش خود را بازیافت و تصمیمی گرفت که از جوانی در او انتظارش در نمی‌رفت. همراهان مرد او هنوز در چادرهای خود بودند، شاهزاده خانم لباس خود را درآورد، و لباس قمر و زمان را پوشید و به ندیمه های خود دستور داد که این راز را در دل خود پنهان کنند. وقتی مردها به حضور او آمدند، ابدا او را نشناختند و به جای قمر و زمان گرفتند. شاهزاده خانم که او را از این پس قمر و زمان نام میبریم، دستور حرکت صادر کرد و کاروان او و خودش، بر اسب از راه خشکی و دریا به سفر خود ادامه دادند تا به جزیره آبنوس رسیدند. سایر مسافرینی که از کشتی به پایتخت آبنوس سختند، خبر ورود شاهصاد قمر و زمان را که در راه بازگشت به جزیره خالدان به پایتخت آبنوس رسیده بود منتشر کردند و این خبر به گوش سلطان آبنوس که نامش آرمانوس بود رسید. سلطان آرمانوس با درباریان خود به بندر آمدند تا به شاهزاده زمان فرزند شاه زمان که با او دوستی نزدیک داشت خوشامد بگوید و او را به قصری که برای قمر و, زمان و همراهانش تدارک دیده بود راهنمایی کند. اجاگر که زمان تصمیم داشت در محلی به طور خصوصی اقامت گزیند، سلطان آرمانوس به افتخار ورود قمر و زمان سه شبانه روز جشن عمومی اعلام کرد و در همه شهر مهمانی و پذیرایی برقرار بود. هنگامی که جشن به پایان رسید و قمر و زمان به کشتی نشست که به کشور خود بازگردد سلطان آرمانوس به کشتی آمد و گفت ای شاه زاده من شیفه یک کمالت شما شده ام و چون سال خورده ام و پسری هم ندارم و مرگ من هم نزدیک است دلم میخواهد شما را به داماری برگزینم تا با دخترم ازدواج کنید و صاحب تاج و تخت من شوید و من هم در گوشه استراحت کنم و از پادشاهی شما لذت ببرم قبر زمان ابتدا ناراحت شد و با خود گفت من که مرد نیستم تا با دختر شاه ازدواج کنم و نباید به او دروغ بگویم. سپس با خود اندیشید: تا کنون شاه نمیداند که من زن هستم و شاه موافقت مرا با ازدواج با دخترش و قبول سرطنت راحت می تصور کرده و انتظار مخالفت ندارد. و شاید هم مخالفت با این پیشنهاد از نظر نوعی بیحرمتی به شما راید و رفتار خسومت ها میزی نشان از طرفی معنی نیست که بتوانم قمر و زمان را پیدا کنم شاهزاد بدو را به این دلایل و به این امید که اگر روز قمر و زمان پیدا شود سلطنت را به او واگذار کند موافقت خود را با ازدواج و سلطنت اعلام کرد و گفت این امر افتخاری است برای من و در امر سلطنت هم با سلطان مشورت خواهم کرد قرار شد روز بعد مراسم انجام گردد در این فاصله قمر و زمان به مردان ملازم خود گفت که قصد دارد داماد پادشاه ابنوس شود و شاهزاده خانم بدورا هم به این امر موافقت کرده است ضمن به ندیمه های خودش موضوع عروسی را گفت و از آنها قول گرفت این راز را مخفی نگه دارند سلطان ابنوس بسیار خوشنود شد و عمر و بلندپایگان کشور را دعوت کرد و موثقه ازدواج دختر خود با غمر و زمان که در واقع همان شاهزاده بدورا بود اعلام کرد و سلطنت را هم به او واگذار نمود و به آنها گفت از امروز به بعد او پادشاه شماست و از او فرمان برداری کنید آنگاه سلطان از تخت پایین آمد و شاگرد خانم بدر را به جای او بر تخت نشست اومرا و بزرگان سوگند وفاداری یاد کردند خبر در سراسر کشور منتشر شد و چندین شبانه روز جشن همگانی برگزار گردید بعد از انجام مراسم عقد کنان و شب نشینی عروس و داماد به خوابگاه رفتند و فردای آن شب بزرگان مملکت برای شاد به شاه جدید در بارگاه او حضور یافتند و به شاهزاده بدورا که او را قمر زمان می تبریک گفتند سلطان سابق و ملکه هم برای دیدن دخترشان شاهزاده حیات النفوس نفوس به کاخ محسوس رفتند و از او احوالپرسی پرسی کردند اما شاهزاده که خسته به نظر میآمد سر به زیرفت و سکوت اختیار کرد و معلوم بود که خوشنود نیست سلطان آرمنوس مدوخر خود دلداری داد و گفت قمر و زمان حتماًش دنبال پدرش می باشد و از سفر طولانی خود هم خسته است و بیش از یک سال از اعضای خانوادهش را ندیده و اگر هم جزیره آرموس پشت سر راه او نبود به اینجا نمی آمد من او را وادار به ازدواج و قبول سلطنت کردم زیرا واقعا از هر جهت شایستگی شاهی و همسری تو را دارد مطمئن باش مدتی که بگذرد به حالت عادی در میآید و شوهر خوبی برای تو خواهد شد شهستاد بدورا به نام قمر زمان لیاقت خود را در مملکت داری نشان داد و تمام درباریان از جان و دل او را قبول داشتند و در امور داخلی هم کفایت خود را به ثبوت رسانید و یک که خدمتکاران و کارمندان دربار را شناخت شهستاد بدورا بعد از فراقت از کارهای روزانه شبهنگام به قصر اختصاصی رفت و داخل خوابگاه ملکه شده. و بعد از تعارفات به ملکه گفت که او را بسیار دوست دارد و از هر دری برای او سخن گفت. آنگاه بر سر نماز و مدت زیادی مشغول عبادت شد. در این فاصله هم ملکه به خواب رفت. شاهزاده بدورا هم به آرامی در کنار او خوابید بدون آنکه او را بیدار کند. شاهزاده بدورا ناراحت بود از اینکه باید نقش مرد را ایفا کند و در این حال هم باید قصه دوری از قمر و زبان را هم پنهان می‌داشت. صبح هم قبل از آنکه حیات و نفوس بیدار شود از بستر خارج شد و لباس پوشید و به محل کار روزانه و شورای وزیران رفت آن روز سلطان آرمانوس دیدن دخترش آمد و او را از دید. آنگاه به دخترش گفت نگران مباش همان گونه که شوهرت را بر تخت شاهی نشاندم او را از تخت به زیر می‌آورم باز هم صبر کن سومین شب ازدواج فرار رسید شاهزاده بدو را باز هم مانند شب‌های گذشته رفتار کرد ولی در این شب حیات نفوس به او گفت تو مرا دوست نداری زیرا من زیبایی و جوانی دارم و تو هنوز با من وظیفه شوهری خود را بهجا ای چه علتی مانع از این وظیفه است پدر من از تو بسیار ناراحت است نمیتواند رفتار غیرعادی تو را تحمل کند شاهزاد بدورا از سخنان حیات نفوس ناراحت شد و میدانست که حق با اوست و از شوهر خود انتظارات بجایی دارد اما چگونه حقیقت را به او بگوید اما برای بقای خود ناچار بود حقیقت را فاش سازد تا بتواند در این جزیره به زندگی ادامه دهد و اگر روزی قمر و زمان از جزیره آبنوس عبور کند او را ببیند و زندگی را از سر گیرد به هر حال تصمیم گرفت حقیقت را بگوید زیرا روز گذشته هم رفتار سرد سلطان آرمانوس نخوشنوگی او را نمایان می ساخت شهزاد بدورا در مقابل حیات و نفوس اصداد. و گفت ای ساده خانوم زیبا و دوست داشتنی من قبول دارم که در رفتار خودم نسبت به شما دچار اشتباه شدم من خود را قابل سرزنش میدانم و در این تردیدی وجود ندارد اما انتظار دارم مرا ببخشید و راضی را زیرا که اینک فاش میسازم پنهان نگه دارید آنگاه سینه خود را باز کرد و گفت ای شاهزاده خانوم سرگذشت مرا بشنوید و خودتان قضاوت کنید که هر کس دیگر هم جای من بود در آن شرایط همین رفتار رو میکرد که من کردم از شما انتظار رازداری دارم و پس از شرح سرگذشت خود گفت آرزو مندم که هرچه زودتر شاهزاده قمر و زمان پریدار شود و همه دشواری ها پایان پذیرد حیات النفوس پس از سخنان شاهصاد بدورا گفت ای شاهزاده خانم سرگذشت شما بسیار شنیدنی و کم مانند است شما با قمر و زمان خوشبخت بوده اید. و جای تاسف است بر اثر یک اتفاق چنین وضعی پیش آمده که زن و شوهر مهربان را از هم جدا ساخته است انشاءالله این جدایی پایان مییابد مطمئن باش راز شما در قلب من خواهد بود شما به کشور خود خواهید رفت و خوشبختی خود را دنبال خواهید کرد و من خود را دوست نزدیک شما میدانم و شما هم دوستی مرا بپذیرید آنگاه دو نفری یکدیگر را در آغوش گرفتند برابر شیوه جاری کشور. دلیل نزدیکی عروس و داماد در شب اول زنوشویی باید در مرز دیده همگان قرار گیرد و دو شاهزاده هم برای رعایت این شیوه چاره مناسبی اندیشیدند و این مشکل را حل کردند و رضایت سلطان آرمانوس و ملکه و درباریان حاصل گردید. از این پس سلطان علاقه و احترام خاص نسبت به شاهزاده بدو را پیدا کرد و او هم در کمال خوبی به سلطنت خود ادامه میداد و همه از طرز کار او خوشنود بودند. حالا به سراغ شاهزاده قمر و زمان می رویم که همچنان در باغ متعلق به آن مرد سالخورده مشغول کار بود. یک روز صبح که مانند روزهای دیگر می‌خواست کار روزانه را آغاز کند، مرد سالخورده به او گفت: امروز جشن همگانی بتپرستا است و در چنین روزی مردم به گردش میروند تو هم امروز کار را تعطیل کن و به تماشای مردم شهر برو. مرد سالخورده به تن لباس‌های خود پوشید و از باغ بیرون رفت. اما قبل و زمان به بجای که به گردش برود در به قدم زدن و آه کشیدن و قصه خوردن برای شاهزاده بدو را پرداخت همینطور که در فکر فرو رفته بود ناگهان سر و صدای دو پرنده که روی شاخه درختی با یکدیگر جنگ میکردند توجه او را جرق کرد بعد از چند لحظه لاشه یکی از دو پرنده بر روی زمین افتاد و ای که آن را کشته بود پر کشید و در آسمان ناپدید شد در همان موقع دو پرندهی بزرگ که از دور تماشاگر آن صحنه بودند، خود را به همان محل رساندند و در کنار لاشه پرنده نشستند و در حالی که سر خود را تکان می‌دادند، برای دوست از دست رفته خود قصه می‌خوردند و بعد هم با منقار و پنجه‌های خود زمین را کندند و لاشه را در آن گذاشتند و روی آن را با خاک پوشاندند و پرواز کردند. بعد از چند دقیقه آن دو پرنده بازگشتند و پرنده قاتل را بونجا آوردند. یکی پرهای او را با منگار خود گرفته بود و پرنده دیگر پاهای او را و پرنده قاتل سر و صدای بسیار راه انداخته بود دو پرنده آنقدر با منقارشان او را نک زدند تا او را از پای درآوردند آنگاه با منقارهای خود شکم او را پاره کردند و لاشهٔ آن را همانجا روی زمین انداختند و پرواز کردند قمر و زمان از دور آن صحنه را تماشا میکرد و بعد جلوتر و دید در میان دل و جگر پرنده تلسم شاساد بدورا خود نمایی می کند قمر زمان با یک دنیا شادی تلسم را برداشت و آن را به فال نیک گرفت و با خود گفت حتما شاهزاده بدورا را هم پیدا خواهم کرد و تلسم را بوسید و در پارچه پیچید و با دقت زیاد دور بازوی خود بست قمر زمان تا آن وقت از نگرانی و فکر خوابش نمی بود اما آن شب راحت خوابید و صبح لباس کار پوشید و نزد باغوان سال رفت و جویا شد که امروز چه کاری باید انجام دهد باغوان هم قدیمی پوسیده‌ی درختی را به او نشان داد تا آن را کاملا از زمین بیرون آورد قبر زمین با تبر خود شروع به ضربه زدن به ریشه پوسیده‌ی درخت کرد اما بعد از چند ضربه احساس کرد که تبر به جسم سختی برخورد می‌کند. کند خاکها را عقب زد و دریچه برونزی پهنی پریدار شد در دریچه را باز کرد و پلکان اینم گردید او از پلکان پایین رفت. در انتهای پلکان سردابی دید که پنجاه ظرف فلزیه در بسته متر ردیف چیده شده بود. آنها را باز کرد و همه انباشته از حوکه های طلای خالص بود. از پیدا کردن چنین گنجی شاد شد و زرف های پر از طلا را رو روی پله ها گذاشت و ریشه قدیمی درخت را هم از جای در آورد. هنگامی که قمر و زمان مشغول کار بود باغبان سراغ یکی از دوستانش رفته و توسط آن دوست فهمیده بود که یک کشتی ظرف سه روز آینده آماده ی حرکت به سوی جزیره آبنوس می شود ولی روز حرکت را بعدا اطلاع خواهند داد وقتی قمر و زمان با خوشحالی از یافتن گنج در آن صداب از پلکان بالا آمد باغبان باغبان هم با خوشحالی در همان وقت وارد باغ شد و این خبر خوش را به او داد و گفت پسرم آماده حرکت باش من در این کشتی ترتیب سفر تو را با ناخدای کشتی داده‌ام. قمر و زمان گفت: این خبر بهترین خبری بود که به من دادی، اما من هم خبر خوشی برای تو دارم. آنگاه باغبان سالخورده را با خود از پلکان پایین برد و به سرداب هدایت کرد و آن همه طلا را به او نشان داد و گفت: این پاداش سالها رنج و فعالیت توست که در این باغ زحمت کشیدی. اینک پروردگار به تو محبت کرده است. باغبان گفت: اینطور نیست. این گنج به تو تعلق دارد چون تو آن را یافته ای و من هیچ حقی نسبت به آن ندارم زیرا سالها من قدم به قدم زمین این باغ را زیر و زبر کرده و چیزی نیافتم خدا من خواست که تو آن را پیدا کنی تو شاهزاده یا ای جوانی این گنج برای تو مفید است من در این سن پیری که عمرم به پایان آمده نیازی به آن ندارم و تو می توانی این گنج را برای خود و برای ملت خود مورد استفاده قرار دهی بعد از گفتگوی بسیار سرانجام شاهزاده گفت این گنج را نصف میکنیم و هر کدام پنج عدد از این ظرف‌های پر از طلا را برمی‌داریم پیرمرد وارسته به خاطر خوشنودی شاهزاده با او موافقت کرد باغبان سالخورده گفت حال باید ببینیم از چه راهی پنج ظرف طلای خودت را میتوانی به کشتی حمل کنی که با خودت به جزیره آبلوز ببری آنگاه باغبان ادامه داد چون در آن جزیره زیتون یافته می شود ب... بهترین کالای مورد نیاز اهالی خواهد بود من خمره های خالی بسیار دارم در هر یک از آنها تا نیمه اشتلا و نیمه دیگر را زیتون می رزیم. تا همه خاکههای های را جای دهیم و ظاهراً هم کسی متوجه آن نمی شود زیرا هم زیتون از این سرزمین به جزیره آب کاملاً کاملا عادی است قمر و زمان این را پذیرفت و تمام آن روز را به اتفاق پیرمرد صرف انباشتن خمره ها از طلا و زیتون کردند قمر و زمان که میترسید مبادا تلسم شاهزاده بدورا دوباره از دست او را بوده شود آن را داخل یکی از خمره ها قرار داد و روی خمره را علامتی گذاشت که آن را بتوانند باز شناسد ضمنا جنگیدن دو پرنده و وقایه بعدی را برای باغان تعریف کرد که موجب حیرت او گردید و خوشحال شد که تلس پیدا شده است آن شب باغوان سالخورده شب را با ناراحتی به صبح رسانید و روز سوم که شاهزاده قمر و زمان آزم سوار شدن به کشتی بود، حال پیر مرد رو به وخامت گذاشت و نزدیک به مردن شد. صبح زود فرمانده کشتی و ملوانان او به باغ آمدند. قمر و زمان در باغ را گشود و فرمانده از او پرسید مطافی کشتی کیست؟ او جواب داد من هستم. باغوان بیمار است و قادر به سخن گفتن نیست. شما و ملوانان زیتون‌های های مرا با بقیه بارها به کشتی هم کنید من هم بعد از خداحافظی با باغبان به شما خواهم پیوست ملاوانان زیتون‌ها و بارها را به کشتی بردند و خدا به قمر و زمان هشدار داد که عجله کند چون کشتی فقط منتظر او بوده و همه مسافرین آمدند وقتی قمر و زمان سراغ باغبان سال خورد رفت او را در حال مرگ دید. وا نگاهی به قمر و زمان کرد و به ترود زندگی گفت قدر زمان عجله داشت که مواد کشتی حرکت کند از طرفی ناچار بود حبشی به مذهب را به خاک سپارد اما نگران بود با این ترتیب کسی را از دست خواهد داد به هر حال با شتاب زدگی باغبان سالخورده را در همان باغ به خاک سپرد و با عجله به سوی بندر دوید تا کلید باغ را به مالک و یا شخص مطمئنی برساند وقتی به بندر رسید به او گفتند که چندین ساعت از کشتی حرکت کرده زیرا با وزیدن باد مساعد ناخدای خودای کشتی نمی توانست تاحقیر کند. ودی هیچ این خبر چه ضررب بر روح قمر و زمان وارد کرد، ناچار بود یک سال دیگر در انتظار کشتی صبر کند. در حالی که کسی را در آنجا نمی شناخت و از همه بدتر آنکه تلف شاه ساده بدو را در داخل یکی از آن خمره های زیتون جای گرفته بود و دیگر چگونه می توانست آن را به دست آورد. به هر حال ناچار به بازگشت به همان باغ شد، و یک سال اجاره آن باغ را تجدید کرد. قمر و زمان کار خود را در باغ دنبال کرد و پسر بچهای را هم به خدمت گرفت که در کارها به او یاری دهد. خوشبختانه نیمی از آن گنج بادآورده که سخت باغبان بود، اینک متعلق به او گردیده بود و تمام 25 خمره آماده بود تا روز حرکت کشتی در سال بعد آنها را به کشلی انتقال دهد. از آنجا که قصردانتی در کنار دریا واقع شده بود، سلطان جدید یا بهتر گفته باشین شاهزاده بدورا کشتی هایی که به بندر وارد می‌شدند زیر نظر می‌گرفت و چون با آن همه شکوه و جلال سلطنت دقیقه از فکر قمر و زمان غافل نمیشد، دلش میخواست که مسافرین کشتی را کسانی یک بار در آن بندر از کشتی پیاده می‌شدند مورد توجه قرار دهد ده شاید گم گم‌شده‌ی خودش قمر و زمان را در میان آنها پیدا کند بنابراین به بهانه اینکه چه کالاهایی در کشتی هم میشود. این بار به اتفاق